أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله يا لله من لعن الضائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله إلهي هبلي كمول الانقطاع إليك فأني أبصار قلوبنا وبذيواء نظر إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجبا النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك لمحمد مهل بيته سلواتي علي عليهم ومجمعين در خصوص ملاک دلالت مفهومی و معیار تلازمی که بشود به دلالت مفهومی منتقل شد هایی که در این زمینه بود داشتیم بحث میکردیم مرحوم محقق خوراسانی تقریری در این زمینه داشت بررسی شد مرحوم میزای نائینی تقریبی داشت مورد بررسی قرار گرفت محقق اسفهانی تقریری رو مطرح فرمودند که میخوایم بررسی کنیم منشأ ورود به این مسئله این است که ببینیم ما مباحثی داریم مسائلی داریم مانند مقدمه واجب که آیا از حجوب زل مقدمه به وجوب مقدمه هم میرسیم وجوب مقدمه دلالت بر وجوب زل مقدمه میکنه یا مثلا امر به شیعی بر نحی از دان میکنه خب این مسئله هم هست از این میگیم که اگر منطوقی داریم آیا دلالت بر مفهومم میکنه باید این مسئله فرق فرق این نوع از مسئله که از اون به مفاهیم تعبیر میکنیم با اون مسائل دیگر مانند معدمی واجب و حرمت زد و همسال اینها چه فرقی دارن؟ چرا ما مثلا دلالت جمله شرطی بر مفهوم رو میگیم مفاهیم اما احیانا دلالت وجوب ظلم مقدم بر وجوب مقدم رو نمیگیم مفاهیم چه فرق میکنیم؟ چی؟ دعوا بر سر در وقت تو این بحث هر کدوم آمدن ملاکی رو به معنا پشتو هم دادند مرحوم محقق سوهانی می‌فرماد که مفهوم ان المفهوم عباره عن اطاب ان فعل انفهام در مفهوم در واقع اون چیزیه که در فهمیده شدن در وقوع فهم فهم تابعه ما یه فهم مطبوعی داریم یه فهم تابعی داریم منطوق در واقع فهم اصلی انفهام اصلی در خصوصا منطوق اتفاق میفته معنای منطوق در واقع اولین انفهامی است که رخ میدهد و یه انفهام دومی باز اتفاق میفته که اون این انفهام اوله اونو ما بهش میگیم مفهوم اولی رو میگیم منتوب دومی رو میگیم مفهوم پس منو بر این به, به تعریف محقق اسفحانی مفهوم عبارت هست از تحابه در انفهام در فهمیده شدن بعد توضیح میده این رو و به اسطلاح به نحوی آرام آرام مئیار ارائی میکنه میفرمود فا این, این اولا و بالعصال این انفهام فا این اولا و بالعصال کان المدلول من المذالیل منطقیه. اگر این انفهام اولا و بالعصال بود این میشه منطق. شما وقتی جمله شرطیه اینجا اکه زیدون فکرمه رو شنیدید اولا و بلعصاله اینه میفهمید که اگه آقای زید بر شما وارد شد تکریم کن و این فهم اولیه این, این فهم اولیه این, اول این مشکل منطوق اگر معنای رو ثانیان و به طبع دریافتید از این جمله جمله این این جا اکم, زید اکم زیدون فکرمو این جا اکم زیدون فکرمو یه معنی دوم داد ثانیان و به طبع یه معنی دیگم داد و اون که اگر نایمد دیگه اکرام نکنی ها این معنی سانیان و به طبعه این دومش مفهوم منطقه با توجه کنیم که ما بین در واقع دو انفهام داریم انفهام اولا و به الاساله انفهام ثانیا و به طبع دومی رو میگیم مفهوم در نتیجه هر چیزی که به طبع فهم شود رو ما نمیگیم مفهوم بلکه اونی که سانیان اگر فهم شد پاش روی فهم اول بود بعضی از مسائلم داریم که یک ترتیبی بین فهم اول و فهم دوم وجود داره اما باید ببینیم بین دو فهم آیا حالت اصالتاً و به طبع اولاً و ثانیانی برقرار یا نه؟ اگر این بود اون ثانیان اون به طبعی میشه مفهوم پس مفهوم معنیش معلوم شد و قهران فرقش با سایر مقولات و مسائل مثل مثلاً مقدمه واجب که از وجوب زد مقدمه میفهمیم خرمات زد... که از وجوب زد شی میفهمیم اینو فرق میگونه دیگه مفاهم نیستن بعد میگه که بالاخره بین این،, این دو مسئله مسئله مفاهیم و مسئله مثل مقدمی واجب و مسئله حرمت زد بین اینها یه تفاوتی هست اگر این تفاوت نبود معادم واجب رو هم باید میوردیم زیر مفاهیم حرمت زدن باید میوردیم زیر مفاهیم احیانا بعضی دیگر از دلالت های عقلی که در بخش مستقل الله تقلیه و غیر مستقل و تقلیه بسیار بست چون هم چاید میمدن زیل مفاهم. اما یه فرقی بین مفاهیم و اون بحث ها وجود داره چه اونها فرق دو تا فرق یه فرقی این است که بین این دو قسم این دو گونه مسئله که الان بحث می‌کنیم مفاهیم و غیر مفاهیم اینجا تلازم وجود داره در هم مقدم واجبه بحث از ملازمه است احيان هم در حرمت ضد احتمال ملازمه وجود داره تلازم وجود داره هم در مانعنفی که مسئله مفاهیم یه تلازم وجود داره منطقه بین اینجا و اون مباحث دو تفاق وجود داره یکی این که در مفاهیم علاوه بر اینکه دلالت تلازمی،, تلازمی وجود دارد منطق هم بر مفهوم دلالت می کنه منطق معنای منطقی، مدلول منطقی بر معنای مفهومی دلالت داره. اما در مثل مقدم واجب اینجوری نیست که بگیم دلیل وجوب به مقدمه بر وجوب مقدمه هم دلالت داره. در حقیقت در مسئله مفاهیم ما دو تا پل داریم که از منطوق معنای اولی و اصلی میزنیم به معنای دومی و فری و طبعی چی اون تا یک تلازم وجود داره وقتی میگیم و لا لهم و اف خب لازمش اینی که شدید ترشم نشدی معلومه که اگر اف گفتن ممنوعه است سیلی زدن ممنوع تر است دوم این که ولا این معنای منطوقی که از این فقر از آیه به دست میاریم بر مفهوم یعنی مثلا سیلی نزن نیز دلالت داره پس هم تلازم هم هست هم منطوق دلالت داره و اون همون در مقدمی واجبی جوری نیست در مهارده مواجه فقط تلازو موجود داره از سله ما کنیم بفهمیم باید پس بوزو هم بگیریم توضع رو نمی فهمیم کلمه سله دلالت نداره اگر میگه مثلا به اصطلاح ضرور مسئله معروف که به اصطلاح میخواییم الان پشتون باری نصف سلم کن گفت که یکی اول اون اعظم دیده بود که کلی دارم بحث میکنن استاد میگه که بالو اون که میخوای بری باید ناردون بذاری بعد گفتن یعنی چی یعنی چی, چی میگن حالا از مثلا از یه جای پشت اومده بود گفتو چی استاد میگه که میخواد بالو پوشتون برید مادم باج باج به ناردون بزنید کاه حالا فهمیدم همه سرشون رو بستن اون ناردون نذاشتن رفتن بالا پر اونجا تلازمه هست اما اینکه بگیم مثل حله توزع می, فهمیم می فهمیم. پس بین مسئله منطق مفهوم با مسئله مقدم واجب فرق وجود داره که در مسئله محفوم منطق دوتا پول داریم یکی تلازم یکی دلت لفظ اما در مسئله مقدم واجب ما یه پول بیشتر نداریم و اون ملازم هست و دیگه همین داریم از کنیم یعنی محقق میگه مصره مصره <تصفيق> و دلالت, یعنی دلالت, می و دلالت, دلالت شو م... شو میگه که اون دلالت به وضعیه حالا بله حالا در هر حال در هر حال الان بس بسر همینه مرحوم آقای میگه که در مسئله مفهوم لفظ هم دلالت داره در مقدم واجب لفظ دلالت نداره فقط <تصفح> این یه فرق فرق دومی دو که مطرح میکنه اینه میگه که در مثل مقدمی واجب یا حرمت زد اونجا مطلب این سادگی ها نیست این تلازم پیچیده در نتیجه ما برای اثبات تلازم باید اقامه برهان کنیم نیاز به برحنه داریم باید مطلب رو مقدمه کبرا و سقرا و نتیجه و باید یه کار عقلی فنی با کنیم اما در مسئله مفهوم نه این نداریم انگار تصور تصور لازم تصور ملزوم رو به همراه داره اگه بخوام به بیان مرحومه میزای ناینی بگیم که بحث کردیم اونجا بیانه بالمعنی اخصه در مفهوم. انقدر معطلی نداره در مقدم واجب چرا در حرمت زد چرا اونجا باید ما کار برهانی بکنیم این دوتون فرق خیلی. از کنم که ما نصد فرمایشون تعمل داریم ایشون اومدن گفتن که در محل بحث ما در مانعنفی فرق است مانعنفی با مسئله مثلا وجود مقدمی و حرمت زد فرق چیه دوتا فرقه یکیش اینه که در اینجا منطوق به مفهوم دلالت میکنه در اونجا ولی دلیل وجوب واجبه وجوب زل مقدمه بر وجوب مقدمه دلالت نمیکنه اونجا ما اول رو کلم بر برسره اینه شما از کجای ادام میکنید که در من در مفاهیم لفظ بر مفهوم دلالت میکنه دلالت منطوق بر مفهوم هم دلالت میکنه در مورد واجب دلالت نمیکنه چون اول اولو دعوا همه بر سر همینه منکرین و مخالفین میگن آقا دل لفظ دلالت بر مفهوم نمیکنه موافقین و مثبتین میگن نخیر خیر چرا بر مفهوم دلالت میکنه تو هم سر همینه شما این که دلالت می کند رو مسلم گرفتید بعد بگید یه فرقه این مبحث هست با اون هم هست حاضر ولل کلام <تصفيق> مطلب دوم شما این که ما در هر دو جا تلازم داریم هم در مقدمی واجب به حرمت زد و امسالا هم سالا. تلازمی هست هم در ماننروفی بین معنای منطق و مفهوم تلازم هست ولی فرق دارن اینا با هم دیگه فرقشون به این است که تلازم در حوزه مثلا بحث مقدم واجب پیچیده است برهنه میخواد در اینجا پیچیده نیست میگیم اینم باز اطلاقش بهنده بحثه از کجا شما این میگید کی گفته است که تلازم در مانحل فی بین من، معنای منطوع و معنای مفهوم، اقوا از تلازم بین وجوب زل مقدمه و مقدمه هست که گفته که اینجا اقواه از اونجاست شاید کسی اون رو یا مقدمه واجب این که از وجوب زل مقدمه به وجوب مقدمه پی ببریم این ملازمه وجود داره این خیلی خوی تره تا اینکه بگیم از منطق به مفهوم پی ببریم این هم داست. هست دو تا تفاوتی که شما قائل شدید و میفرمایید به نظر میاد محل تعمل لقائل ان یقول جعلتم الفرق الفارق بین ما نهنو به صدده ای المفاهیم و بین مثل وجوب المقدمه و حرمت زد اولا اضافه تن وجود التلازم یکش یه فرقی نه که به اضافه اینکه تلازمی وجود دارد لفظم دلالت داره دلالت المنطق علی المفهوم اول یعنی مفاهیم و وجود تلازم و عدم دلالت المنطق علی علی المفهوم في على مقدمه وجوب المقدمه في الصاني. صاني مثال وجوب مقدمه وهو متسقت بود این گفتید این یه فرق فرق دوام گفتید ثانیا عدم لا بدت البرهنه على التلازم في در مفاهیم و لا بدت البرهنه عليه من الخارج في الصاني. فنقول اولا ها اول کلام فنن نظاف المفاهیم وقع فی دلالت لفظ علم مفهوم و از هم دلالتی علی دعوا سر همینه دعوا بر سر که آیا لفظ دلالت بر مفهوم دارد یا ندارد شما مسلم گرفته دلالت های دلالت دوشکیم نظا نداری اصلا نظا از میان برمیشیسه خواهی قبول دوشکیم دلالت دارید گسه این مفهز رو میکنیم فقط ادام میکنیم ول منکر یقول بعد هم دلالت المنطوق مطلقن لا تطابقن ولا تزمونن ایشون علاقه مطلبی دارن می که دلالت التزامی هم دلالت لفظیه احتمالا این مبنو مبنو خاصیشونه این من بر نخوردم به دیگری که این مطلب رو دار و سر کنه اشون به ما که دلالت التزامی و تحلازمی هم دلالت لفظی است چون ما میفهمیم و یاد گرفتیم این است که دلالت تطابقی دلالت لفظه دلالت لفظ تابقا نه علبه نه برمعنا دلالت تزامنی هم دلالت لفظه چون معنای زمنی و جز در ضمن معنای اصلی هست ولو دلالت دارد من تا ما وقتی میگیم می تزمونی میگیم بر همه اون معنا دلالت نداره و جز جزء اراده کرده مثلا آقا خانه خراب شد میخواد بگه دیوار خراب شد ولی وقتی گفت خانه خراب شد یعنی دیوارم خراب شد دیوار خراب شد جز از معنای خانه خراب شده خب این لفظی درست این دو طور قبول داریم اما دلات التزامی هم به اختزای لحظ باشد این محل تعمل ایشون جای توضیح می فرمان, می فرمان که دلات التزامی هم می در دلات لحظی باشه حالا اگر این باشه خب ممنوع خاصیشونه امکن اشکال ما حسب معنایشون وارد نباشه اولا اصول وارده و ثانیه اشکال دوم. ما موبصر رو عدم الحاج الى البرهنه على التلازم في الاول مثلا جمله که مفاهيمه و الحاجه الى البرهنه على من الخارج في ثاني مثلا مقدمه واجب فق شيء فهل هو للقوه الملازمه الموجوده في و ضعفها في ثاني ايو ملازمه در مثلا مقدم واجب ضعیف کمرنگ؟ ملازمه در مفاهیم اقواست پررنگه به این دلیل چی گفتیم چیزی رو از کجا این اثبات میکنیم ولیکن فیدالکه مجالاتون تعمل این که ما بگیم ما اینجا در مفاهیم ملازمه قوی تره در مقدم ملازمه اگر بحث عقلی باشه بحثا بگیم نخیر برعکسه ممکنه بله بعضی از احیاناً موارد از مفاهیم ملازم خیلی قوی باشه مثلا اونجایی که مفهوم موافق می‌گیریم مثل مثلا مفهوم اولویت همین مثال پلاتق اللهم اوفن اینجا مفهوم اولویت میگه اگر اوف گفتن ممنوعه خب سیلی زدن که به طریق اول ممنوع است اینجا ممکن میگم ملازم قوی است اما سلام فرض در وصف، در قایت، در زمان، در مکان چون میتونه بگه ملازم اقواست اینجا اقوا از مقدم واجبه نسبت به این زل مقدم و وجوب زل مقدم و وجوب مقدمه کی گفت اقواست؟ ولیکن فضالکه مجالاتون لتعمل به نظر میادین به جد محل تعمله بلی امکنن یک اطلاع از بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه اقوام مفهوم شرطیه ممکن کسی بگه اونجا قوی تره به نتیجه ما مبنامه معیاری رو کشونه مطبع فرمودند رو ما نمیم پذیریم بروم شیصد اشکال دیگری فرمودن. فرمودن این حیثیت انفهامی که شما مطبع میکنید کلمه انفهام ایشون به کار برد مرحوم ماقه عثماني فرمودين هيثيت انفهامی که مطرح میکنید یعنی چی مگر جز اون برهان ملازم است اون جهاتی که در برهان ملازمه مطرحه شما میخواد بگید از این انفهامی این دو جور انفهام داریم منطوق و مفهوم بین انفههاام منطوقی با انفاام مفهومی ملزمه وجود داره. این یعنی چی؟ اینها یا چیزی غیر از آن است که میخواد بگید یه تلازم عقلی هست. بالاخره بخوایم به تعبیر شما برحنه کنیم ما یه کبرایی داریم یه سقرهایی داریم یه نسبتی داریم در این میان. کدوم این شما میفرمایید و یه مشتملتون تون کبرن و سقرن فلوا اورید اشتراط، استفادت سغرا ملل منطوق این که میگید ملازمه هست یعنی سغرای اون به اصلاح قضیه رو که به دست میاد شما از, مفهوم، از منطوق میفهمید یا که میفهمید کلوم از این هست. و دلالت بین اینها بین کلوم از این برقراره هر کلوم از این رو به اصلاح ادعا کنید شما برمود به نظر ما محل تحمل خواهد بود اگر میگید تلازمی هست به انتفاع مثلا سقرا اون منتفی میشه یا به انتفاع کبرا ملازم بین کدو اینو برقرار هر دو محل تعمل ما نمیپذیریم این فهم در واقع عقلی رو از بیان شما وانگهی اضافه کنیم قبلا هم در بیان مرحوم آخود خراسانی هست کردیم اضافه کنیم برای مسئله که وقتی تحلازم پاش وسط میاد مسئله میشه عقلی ننفذی مگر این که باز بریم تو فضای فکر مرحوم محقق اسوانی محقق اسوانی دیام داره و اونی این است که اولا گفتیم تحلازم را هم میگشکار نداره ما معنای لفظی بتونیم بگیم لفظ دلالت بر تلازم، معنای تلازمی هم دلالت لفظیه این نیست که معنای تلازمی از دلالت لفظ خارجه این رو هم بدونیم که حالا ممکن وقت در این صورت این اشکال وارد چه که اگر دلالت تلازمی لفظیه در مقدم واجبه که تلازم هست باید بگیم لفظیه فقط داخلی نیست اونجا باید مبنامونی بشه در این صورت در هر حال در فضای ذهنی محقی اصفحانی ممکنه احیانا باز یک به صلاح راهی پیدا کنیم و در مجموع من میخوام در وقت زیل همین نکاتی خودمون از کردیم و از 600 نقل می‌کنیم یه فتح عملی بگذاریم شاید ادب شاگردی وامداری آمداری کنه که ما وقتی در مقابل بزرگان قرار میگیریم مثل تلاوی ضعیفی همچون بنده مثلا یه دوتا ایراد میگیریم احتمال بدیم که اون بزرگان این ایرادایی که ما خیال میکنیم گرفتیم و توجه داشتن و ماها با مثل محقق استوانی نمیتونیم در تراز نیستیم اونها نوابقی بودن نوادری بودن حرفاشون خیلی رو حساب بوده شاید ما مطلب اونا رو نفهمیدیم البته این منافعت نداره که ما جرأت نکنیم به هماوردی با بزرگان بپردازیم به مسافه بزرگان ما رفت با قوت با شجاعت اما این مقام یعنی حق ماست حقوقه. اما در مقام اخلاق باید بگیم که شاید ما مطلبی اونا رو خوب نفهمیدیم شاید اونا در ذکر ذهنشون نقطه‌ای بوده است که ما به اون پی برده ایم. احتیاط اینه ولذا برغم این دوسته اشکالی که طرح می کنیم باز یه فتح ذیل اشکالات در قبال کلام مرحوم حقی استوانی عرض می کنیم. جلسه بعد انشاءالله تغییر خود 600 رو توضیح خواهیم داد. خود شیستد این مسئله رو به بیان و میار دیگری حال می کنه.